اول قوم نه زبانه گرگی آبی رنگ همراه با سرنوشت خود از آسمان به دنیا آمد جفت او یک ماد به گوزن بی تحرک بود آنها از دریا گذشتند و آمدند هنگامی که در سرکشمه رودخانه اونون در کنار کوه برخان غلدون موقعتاً مقیم شدند باتاکاسیغان به دنیا آمد تاریخ سری مغولان باتاکاسیغان پسر گرگ و گوزن جد استورهی قبیله مغول بود قبیلهی که با قبایل جنگوی دیگری که از ابتدای تاریخ بشر در سرزمینی به نام مغولستان زندگی می کردند متحد شد در صده دوازده میلادی تقریبا سیده قبیله کوچنشین شامل جمعیتی بینه یهکن تا سه میلیون نفر در مغولستان سکونت داشتند. این قبایل مختلف از لحاظ زبانی به یکدیگر مرتبط بودند اما نه گونه ترکی، تونگوزی و مغلی از گروه زبان آلتایی در میان آنها تکلم می شدد. لظ آلتایی محخوذ از نام کوه های آلتایی است که مرز غربی سرزمینی را که آنها در آن به سر می بردند، تشکیل می‌داد. زادبوم این قبایل دشت وسیع، مسطح و تا حد زیادی بدون درخت بود که در سراسر آسیا امتداد داشت. قبایل مختلف ساکن این دشت هنوز به طور دست جمعی تحت عنوان مغولان خوانده نمی‌شدند. این قبایل که فاقد هویتی جمعی بودند، خود را ملل خیم نمدی یا بر اساس اختلاف زبانی خود، قوم نه زبانه می و هر یک نام خاص خود را داشتند. خواستگاه گروه مغلب که اعضای آن به صورت رهبران پدیدار شدند و نام آنها بعدها به همه احالی دشت پهناور اطلاق شد در قسمت جنگلی شمال غرب آن سرزمین بود. زندگی کوچ نشینی بخش اعظم سرزمین مغالستان برای کشاورزی نامناسب بود و از آن رو که قبایل ساکن در آنجا رااعتی نداشتند با کمبود غذا روبرو بودند و این کمبود باعث شده بود که جمعیت این مناطق نسبت به وسطت سرزمین پهناوری که بالغ بر حدود سی۸ تا میلیون جریب می بسیار کم باشد. قبایل در اردوگاه های کوچک در داخل دشت پهناور پراکنده شده بودند به این ترتیب قبیله مغل از بسیاری توایف کوچکتر و پراکنده در منطقی وسیع تشکیل شده بود هر تایفه یک خانواده گسترده که شامل یک مرد همسران برادران فرزندان و نوه او بود میتوانست اردوگاه خاص خود را داشته باشد پیش از به قدرت رسیدن چنگیز خان قبایل قدرتی مرکزی یا رهبری واحد نداشتند توایف و قبایل ممکن بود اتحادی موقت با فردی قدرتمند برقرار کنند اما این وفاداری ها بارها تغییر میکرد قبایل در تابستان نزدیک چراگاه های وسیع مسطح زندگی میکردند و در زمستان به درههای رودخانه ای امن می رفتند های مغولان غبایل برای بقای خود از گله های حیوانات چرنده مانند اسب، گوسفند، بز و گاو نگهداری می کردند آنها به منظور یافتن چراگاه های مناسب برای عصب ها و گله های خود به طور فصلی کوچ می کردند هر قبیله یا تایفه چراگاه های مطلوب خود را داشت و هنگام تابستان به آن زمین ها باز می گشت حفظ سلطه بر چراگاه ها یک منشه دائمی ستیز قبایل بود اسبها برای مغالان و همه قبایل دشت پهناور ضروری بودند اسبها که از هزاره دوم پیش از میلاد در جنوب روسیه رام می شدند ابتدایی برای حمل و نقل به وجود آوردند اسبها همچنین به قبایل دشت پهناور کمک می کردند تا از گله های خود نگهداری کنند و به شکار بپردازند به علاوه مغولان از شیر مادیان برای تحییه نوشابهی الکلی به نام غمیز استفاده می کردند. حیوانات دیگری که کوچنشینان معمولا از آنها استفاده می عبارت بودند از گاوها حیوانات مفیدی که میشد برای گوشتشان زبهشان کرد و گوزفندان و بزها که اجزای اصلی خوراک آنها یعنی گوشت، شیر و پنیر را فراهم می آوردند خانواده های مغل در پاییز بعضی از گوسفندان خود را زبه و گوشت آنها را در زمین دفت می کردن تا منجمت شود. درجه حرارت دشت پهناور مغلستان، تابستانها تا چهل درجه سانتیگراد و زمستانها تا منفی 35 درجه سانتیگراد می رسد. به این ترتیب این دشت پهناور اگرچه در سراسر تابستان پر علف است، اما هر سال از ماه نوام تا آوریل زمین آن یخ بسته است. مغولان در طول زمستان تکه های منجمد گوشت گوسفند را با قطعات یخ بریده شده از رودخانه ها یا دریاچه ها میجوشندند تا خورشی تهیه کنند که منبع اصلی پروتئین آنان بود. گوشت را معمولا میجوشندند یا کباب میکردند. اما گاه در شرایط سخت برای مثال هنگام مقدور نبودن افروختن آتش گوشت را به صورت خام نیز میخوردند. آنگاه گوشت را با قرار دادن آن در زیر زین اسب یا شطوری که در تمام روز سواری می نرم می کردند. بعضی از بیگانگانی که با مغلان روبرومی شدند، از نحوه تقضیه آنان احساس نفرت می کردند. بنابرای گفته ی جوانی پلانو کارپینی، راهب دومینیکی که در عواست صده سیزده میلادی برای تبلیغ مذهبی به سرزمین مغولان اعظام شده بود، مغولان در عادات غذا خوردن خود مشکل پسند نبودند. خوراک آنها شامل هر چیزی می شود که بتوان خورد. زیرا آنها سگها، ها، گرگ ها، روباه ها و اسب ها را می خورند و در صورت لزوم از گوشت انسان نیز تغذیه می کنند. آنها نجاستی را که از مادیان ها هنگام زاییدن هایشان خارج می شود می خورند. نه فقط این مواد، بلکه دیدم که شپش ها را هم می خورند. آنها می چرا نباید آنها را بخورند وقتی که آنها گوشت پسر مرا میخورند و خون او را می نوشند همچنین دیده که آنها موش را میخورند بهترین و غنیترین غذا به مردان جوان تایف داده می در حالی که افراد مسنتر با غذا را می هرچند افراد پیرتر به دلیل آگاهی و تدبیرشان مورد احترام بودند اما بهترین غذا به جوانان می رسید زیرا آنها مسئول محافظت از قبیله بودند همه یه اهل خانه از ظرفی مشترک قضا می خوردند. کارپینی راهب شهر داده است که چگونه یکی از آنان لغمه ها را می و دیگری آنها را بر سریه کارد می گیرد و به همه تعارف می کند به بعضی بیشتر به بعضی کمتر بسته به اینکه بخواهد نسبت به آنها احترام بیشتر یا کمتری نشان دهد. خیمه نمدی گوزفندان علاوه بر خوراک پشم نیز فراهم می که میشد از آن برای تحییه پارچهی با دوام استفاده کرد کوچنشینان از پشم گوزفندان نمد می به این ترتیب که باریکه های پشم خیس را به هم می و بعد آنها را به دم عصب ها می و هنگام کشید شدن الیاف به روی زمین آنها را در هم می پیچیدند. سپس پیه آب کرده بر روی نمد می تا نسبت به رتوبت نفوز ناپذیر شود. از نمد برای منظورهای مختلفی استفاده می شود. مثلا برای دوختن ردایی که آب به آن نفوز نمی کرد. اما یکی از مهمترین کاربورت های نمد پوشش خانه های مغلی بود. یک خانواده مغل در خانه ششزلی یا مدور به نام یورت یا گر زندگی می کرد. ظرف کمتر از یک ساعت میشد اجزای این خانه ها را از هم جدا و بارگاری کرد. این خانه ها برای زندگی کوچنشینی مناسب بود. یورت از یک چارچوب چوبی سبک و پوششی از نمد کلفت برای محافظت در برابر باد و باران تشکیل می شد. در یورت ها برای اجتناب از بادهای سرد غرب و شمال همیشه رو به جنوب بود. غالباً الوارهایی را روی کف یورت قرار می و رخت خوابها، جارختیها و صندوقهای حاوی اشیای نفیس را به صورت دایر دور دیواره می چیدند. هر یورت اجاقی در وسط داشت برای روشن کردن آتش در این اجاقها از تاپاله حیوانات استفاده می دود اجاق از طریق سوراخی که در سخف ایجاد شده بود بیرون می رفت. زنان مغل مسئول جمع کردن تاپاله و افروختن آتش بودند زنان مغل زنان مغل در سنی پایین و غالباً با مردی که منتخب والدین آنها بود ازدواج می کردند والدین غالباً در حالی که فرزندان آنها هنوز بسیار جوان بودند ازدواجهایی را میان آنها به عنوان وسیلهی برای تسبید یک اتحاد ترتیب می دادند. یک مرد جوان مغل ممکن بود که اجازه یابد همسر خود را از میان دختران قبیلی برگزیند که والدین او انتخاب می کردند نظر به اینکه که کوچن شینان دشت پهناور بیش از حد استطاعت خود زن می زنان گاه در یک شوهر سهیم می شدند. کارپینی راهب رسم چند همسری مغلان را این گونه شهر داده است هر مرد مغول هر تعداد همسر را که بتواند نگهداری کند اختیار می کند: یکی صد تا، دیگری پ تا دیگری ده تا. یکی بیشتر دیگری کمتر. ازدواج با خیشاوندان به استثنای مادر، دختر و خواهری که از مادر آنانه است برایشان رسمی عمومی است. با وجود این آنها با خواهران خود که از یک پدر هستند، و حتی با همسران پدر خود پس از درگذشته او می توانند ازدواج کنند. همچنین یک برادر جوانتر می تواناند با همسر برادر خود پس از درگذشته برادرش ازدواج کند یا انتظار برود که خیشاوند جوانتر دیگری آن زن را بگیرد. آنها همه زنان دیگر را بدون هیچ فرقی به همسری اختیار می کنند و آنها را به بهای بسیار بالا از والدینشان میخرند. قدرت و خشونت زنان زنان مغل غالباً مشاوران سیاسی مورد اعتمادی برای شوهران خود بودند و در غیاب شوهرانشان همه مسئولیت بر دوش آنان بود. اگر شوهرانشان به لشکرکشی های گسترده می زنان اموال خانواده را بار می و پشت سر آنها به راه می و حین حرکت اردو می و هنگامی که نبرد پایان می به میدان جنگ می و دشمنان مجروح را می کشتند. از نظر بیگانگانی که به ابراز چنین جرعتی از سوی زنان خونه گرفته بودند، قدرت و خشونت زنان مغول غالباً ناهنجار به نظر می رسید. کارپینی راهب نوشت دختران و زنان جوان به چابوکی مردان سوار عصب می شدند و چهار نل می تاختند. ما حتی آنها را در حال حمل تیر و کمان دیدیم. هم مردان و هم زنان قادر به سواری در مسافتهای طولانی هستند ویلیام روبروک راهب اروپایی دیگری که در سال 1253 میلادی به سرزمین های مغلستان سفر کرد گزارش داد که زنان مانند مردان با پای گشاده در دو طرف اسب به سواری میپردازند و پیش از سوار شدن بر اسب برای بستن پستانهای خود نواری پارچهی به دور سینه میبندند او همچنین ذکر کرد که زنان هنگام نقل مکان طایفه یورتها را بر گاری ها بار می کنند و در اردوها از گاری ها پایین می گذارند و گاری ها را می رانند. زنان مغل مسئولیت های دیگری نیز داشتند. آنان گاو ها را می دوشیدند و کره و گروت یا کشک تهیه می کردند. حوصل حیوانات را پرداخت می کردند و آنها را با نخ ساخته شده از پی حیوانات می دوختند، تا بالا پوش، کفش، ساقبند و لباس های چرمی دیگر تهیه کنند و بالاخره این زنان بودند که بیشتر وعده های غذا را تدارک می دیدند بعضی از کارهای عادی روزمره را هیچ مغلی انجام نمی داد. مغولان مغلان یا ظروف خود را نمی شستند زیرا اعتقاد داشتند که آب روحی زنده است و آلودن آن گناه است بنا به گفته روبروک راهب آنها هرگز لباسهای خود را نمی شویند. زیرا می که این کار خدا را خشمگین می کند و اینکه اگر لباسها را برای خشک شدن آویزان کنند خدا رعد ایجاد می کند آنها حتی کسانی را که لباسها را می کتک می و از نزد خود می رانند آنها فوقلاده از رعد می ترسند. در چون این موقعی همه بیگانگان را از خانه هایشان بیرون می و خود را در نمدی سیاه میپوشانند و در آن پنهان میشوند تا زمانی که رد تمام شود به همین ترتیب قوانینی داشتند که آنها را از استحمام یا ادرار کردن در آب جاری که به اعتقاد آنها باعث هاوردن ارواح میشد منع میکرد شمنیسم مغولان مغولان شمنیست یا روح پرست بودند که دینی بود متداول در نواهی کوهستانی اورال و آلتایی در شمال آسیا و اروپا شمنیست ها معتقد به دنیای نادیدنی از خدایان ارواح نیاکان و شیاطینی هستند که می توانند بر سیر رویدادها اثر بگذارند ارواه در آین شمنیست فراوانند و در کوها، جنگلها، رودخانه ها، سنگ ها و جانوران به سر می تنگری خدای متعال مغان در آسمان به سر میبرد و آسمان آبی جادان خوانده می شدد. مغولان برای حرف زدن با آسمان آبی جاودانه به قله مقدس سعود و ابراز فروتنی می کردندند. شمنها یا مردان و زنان مقدس جادویی داشتند که دسترسی به دنیای ارواح را برایشان ممکن میساختند. شمنها مانند پیشگویان آینده را پیشگویی می کردندند و برای این کار غاالاً استخوان های خاص پیشگویی استخوان های پهن و سوخت کتف گوسوندان را میدیدند و ترکها و خطوط روی آنها را تفسیر می کردندند. برای تفسیر وقاع یا پیشگویی اینکه بهترین روز برای عزیمت به سفر یا شروع یک کار چه روزی است غاالاً با شمنها مشورت می شد از آن رو که شمنیست مستلزم هیچ نوع عبادت جمعی نبود و مغولان نسبت به ادیان دیگر مدارای فوق‌العاده‌ای داشتند، بسیاری از خارجیان گمان می‌کردند که مغولان به هیچ دینی عقیده ندارند. صنعت زندگی در دشت پهناور ساده بود. صنایع مغولان پیشرفته نبود. قبیله گاری ها و چرخ های چوبی می ساختختند و برای ساخت سلاح و ابزار کار ساده روی فلزات انجام میدادند. مردان کمان، پیکان، زین و کیسه چرمی درست میکردند. کوچنشینان اگر به چیزی علاقه داشتند که خود نمیتوانستند آن را بسازند برای دستیابی به آن به داد و سهت می پرداختند و گاه آن را از جوامع اسکان یافته مجاور می دزدیدند گاه گروه هایی سواران به روستایی چینی حمله می و زنان حیوانات و کالاهایشان را با خود می مغولان مغلان به خصوص شیفته اجناسی بودند که نمی توانستن تولیدشان کنند مانند عبریشم، نقره و طلا. به این شکل مغولان که معمولن به عنوان رمدار و شکارچی زندگی خود را می گاه سلاح بر می و به لشکرکشی های غارتگرانه به سرزمین های ثروتمند چین دست میزدند. قرنها بود که گروه های سواران کوچنشین به خارج از مغولستان میتاختند و روستاها و شهرهای نزدیک چین را غارت می کردندند. چینیها به این سواران خشن از روی استحض نپخته میگفتند. با وجود این چینیها به واسطه این حملات مورد تهدید قرار نمی گرفتند. زیرا کوچنشینان، تمایولی به غلبه و حکومت بر ملت کشاورز اسکان ای چون ملت چین نداشتند. مغلان به عنوان کوچنشین خود را مافوق تمام اقوام اسکان یافته و شیوه های دیگر زندگی به شمار می آوردند. هرچند کوچنشینان دشت پهناور در زمانی که فرهنگ چینی در بخش اعظم آسیای شرقی انتشار یافته بود در مجاورت چینی ها زندگی می کردند، اما از پذیرش رسوم و شیوه های زندگی چینی خودداری می کردند چینی ها به قبایل توجه داشتند و می کوشیدند تا با قدرتمندترین آنها ارتباط برقرار کنند از حدود سال 200 پیش از میلاد مورخان رسمی دربار چین نام قبایل خطرناک و مهاجمی را که اقدام به تهدیدهای نظامی کرده اند به ثبت رساندند در این گزارش ها کوچنشینان تحت نام هسیون در سراسر صده ها یک بلا به شمار می آمدند. چینی ها برای اجتناب از تهاجم غبایل دشت پهناور به قبایل قدرتمند رشوه می و آنها را ترقیب می کردند تا گروه های دیگر را آزار دهند. چینی ها با سیاست تفرق بینداز و حکومت کند به ایجاد ناهماهنگی در میان قبایل کمک کردند و آنها را در حالت ستیز با هم نگه داشتند به این امید که بتوانند با ایجاد منازعات میان قبایل دشت پهناور از اتحاد آنها و پیش آمدن تهدیدی جدی از سویشان جلوگیری کنند سیاست چینیان نسبت به کوچ نشینان تا سده 12 میلادی مؤثر واقع شد قبایل متنازه در صده دوازده میلادی قدرتمند ترین قبایل دشت پهناور عبارت بودند از تاتارها، کرایتها، مرکیتها و نایمانها جنگهای قبیلهی مداوم آنها روال زندگی در دشت پهناور را با دشواری روبرو کرد آنها عصبهای هم دیگر را می دزدیدند و گوزفندان یکدیگر را می کشتند. غبایل به دلیل نبرد دائمی در فقر مطلق به سر می بردند چنان که تب تنگری شمن بعدها به اخلاف چنگیز خان گفت پیش از آن که شما متولد شوید ستارگان در آسمان ها همه با هم در ستیز بودند به جای خوابیدن انوال یکدیگر را می دزدیدند زمین و پوسته آن در جنب و جوش بود همه ملت در تغیان بودند به جای استراحت با یک دیگر می جنگیدند. در چنان دنیایی کسی آنطور که می زندگی نمی بلکه بیشتر در ستیز دائمی بود. همانی وجود نداشت تنها جنگ بود. محبتی وجود نداشت تنها کشتار متقابل بود. در این دوره آشوب و بی در دشت پهناور اخلاقیات رو به زبال رفت و دزدی، تجاوز به زنان و تخلف دیگر از قوانین سنتی کوچنشینان به صورت نمادهای برتری و قدرت درآمد این ازمهلال قوانین اخلاقی باعث شد نظم تایف که اساس جامعه مغول بود رو به زوال برود رشید الدین و وقای نویس ایرانی این سخن را از مقالان ضبط کرده است مردمانی که پسران ایشان بیلیک یا سخن حکیمانه پدران نمی و عینیان یا برادرهای کوچک به سخن آقایان التفات ننموده و شوهر به خاتون اعتماد نکرده و خاتون به فرمان شوهر ننشسته و غاینان یا برادر شوهرها عروس را نپسندیده و عروس غاین را حرمت نداشته و بزرگان کوچکان را امایت نکرده و کهتران نصیحت مهتران نپذیرفته و سبب آن دزد و یاغیان و حرامی چنان پرشمار خواهند شد که خرشید را تاریک خواهند کرد. تیه این دوران مردان جوان شروع به ترک توایف خود کردند تا به خدمت هر رئیسی که بتواند تأمینشان کند درایند. این مردان که نخود یا پیروان خانده می در خانه رئیس خود زندگی می کردند. و سوی او حمایت می شدند آنها در مقابل به رئیس خود در جنگ یاری می کردند. از او در برابر دشمن محافظت می کردند و کارهای روزمره خانه را انجام می دادند. نخود سهمی از اموال غارتی در جنگ را به عنوان پاداش به دست می آوردند. آنها زندگی خوبی داشتند و می توانستند از طریق سلسل مراتب ترقی کنند و قدرتمندتر شوند تشکیل ملت مغل در این دنیای بی ثبات و پرستیز بود که پسری به نام تموچین به دنیا آمد. ملت مغول که او آن را بعدن به وجود آورد از بیش از نوزده گروه غبیلهی موسوم به خیشاوندان برجیغین تشکیل می که همگی از نسل جدی مشترک به نام بدونچر برجیغی بودند. این قوایل که عبارت بودند از آدارگین، آرولات، ورولاس، با آرین، بارین، بوداوت، بسوت، گنیگس، جدارات، جاورت، جورکین، کاپتورخاس، خنگخوتات، منگوت، نویاکین، اونگیرات، اورونار، سونیت، تایجیوت و اورووت در عواست صده دوازده میلادی به صورت نوعی اتحادیه موجودیت داشتند و یسوکای بهادور، پدر تموچین، رئیسی کوچک در داخل این اتحادیه بود. تا صده سیزده میلادی که غبایل کوچنشین تحت رهبری چنگیز خان وحدتی یافتند هرگز به ایجاد ساختار سیاسی پایداری نائل نشده بودند، زیرا وقت و نیروی خود را، صرف رقابت میان خود می کردند گفته می شود که تاریخ مغل با چنگیز آغاز شد زیرا پیش از استیلای او مغلان یک ملت نبودند آنها نه زبانی مکتوب داشتند و نه هیچ نوع گزارش رسمی تاریخ نویسان برای پیبردن به تاریخ قبایل دشت پهناور پیش از صده سیزده میلادی به باستان شناسی و گزارش های اقوام دیگر به چینیان متکیند نخستین شرح مکتوب بجامانده از قوم مغول تاریخ سری مغولان کتابی دست نوشت از صده سیزده میلادی است که منشع مغلان و اعمال آنان را شهر داده است تاریخ سری پس از مرگ چنگیز خان برای شهر دادن ظهور قوم مغول و اقدامات فرد فاتح آنها تعلیف شد این تاریخ داستان ظهور مرد جوانی به نام تموچین را که بعدها چنگیز خواه نامیده شد نقل می کند.